وقولوا للناس حسنا وقولوا حسن و با مردم به زبان خوش سخن بگویید نیکو صحبت کنید یعنی چی؟ یعنی که هم کلمات خوبی به کار ببرید هم طرز صحبت کردنتون خوب باشه